فصل چهارم مدل‌های تحلیل الگوهای اسناد درونی و بیرونی در این فصل به مدل‌های تحلیل اشاره می‌کنیم رفتارها و روحیات مردم به ویژه در جوامع در حال گذار و توسعه ممکن است با دونو الگوی متمایز تحلیل شود الگوهای اسناد بیرونی و الگوهای اسناد درونی در الگوهای اسناد بیرونی خلقیات را به عوامل بیرونی اسناد میدهند، اما در الگوهای اسناد درونی عوامل روحیات مردم را در درون پیجویی کنند. برای مثال در اسناد بیرونی علت خلقیات را در حمله عرب یا حمله مغول جستجو می کنند، یا اخیراً در استعمار و امپریالیسم و در نهایت تهاجم فرهنگی غرب و جهانی سازی مثلا فتروس بر آثار حجوم عرب در آشفتگی فرهنگ و اخلاق ایرانی تاکید می کند. به عقیده او پس های آریایی ایرانی تحت تأثیر یک عامل مخرب بیرونی قرار گرفت. او در مقام تحلیل آشفتگی های رفتاری ایرانیان عمدتا به الگوی اصناد بیرونی متوسل می شود و در واقع از این طریق خلقیات ایرانی را توضیح می دهد. یا میرزاخان کرمانی تأکید بسیار دارد مشکلات اخلاقی ایرانیان را به حمله عرب اصناد و ارجاده هد. محمد رضا فوشاهی نیز تأثیر فرهنگ بادی نشینی مقل بر ایران را آن هم در آستانه رونسانس غربی توضیح میدهد. فوشاهی این نو تحلیل ها را در کتاب تحولات فکری و اجتماعی در ایران و کتاب های بعدیش بحث و بررسی کرده است. او توضیح می‌دهد چگونه در دوره بسیار مهمی از تاریخ که جوامع غربی در آستانه تحولات نوزایی بودند ایران با آن پس‌زمینه های عصر زرین خیش و به رغم پیشینه تمدنی و فرهنگیش از بد حادثه آماج یورش مقل قرار گرفت به عقیده او آن هجوم موجب شد آشفتگی های بسیاری در الگوهای رفتاری ایرانیان شکل گیرد مباحث مشابهی در دهه‌های اخیر مطرح شدند که به نوعی از نظریه امپریالیسم و وابستگی مشروب میشوند. این مباحث مسائل فرهنگی جوامع در حال توسعه را به عامل امپریالیسم و اخیراً جهانیسازی نسبت میدهند و از طریق نقد جهانیسازی بحران بحرانهای هویت و مشکلات آنومیها، ناهنجاریها و های رفتار اجتماعی در ایران. و دیگر جوامع در حال گذار و جهان سوم یا در حال توسعه را توضیح دهند یک نمونه بسیار آشکار از اسناد بیرونی به منزله سرمشق نظری و مدل تحلیلی تحلیل گفتمان شق است کسانی که از طریق نقد گفتمان شق مسائل فرهنگی جوامع در حال توسعه را توضیح می‌دهند ادوارد سعید از این جهت یک نمونه برجسته است که کتاب شرخشناسی خود را در دهه 70 میلادی منتشر کرد. او بعدها و در دهه نود کتاب امپریالیسم فرهنگی را منتشر کرد. طبق اعتقاد سعید، متن‌های غربی را ساخته و تصویری از شرق پدید آورده است. غرب شناسنده شده و شرق موضوع شناسایی به عبارت دیگر، انصر فاعلیت شناسایی یا سوژگی از شرق سلب شده است. شرق برای شرقشناسان غربی یک ابجه است و غرب با متعهای خود، متعهای آکادمیک متعهای شرق شناسی، و اسلام شناسی پورتری از شرق برساخته. این پورتری که مثلا شرقی جماعت احساساتی است. سعید به سفرنامه نویس هایی مثل ریچارد برتون، رمان نویس هایی مثل گسطاف فلوبرت یا محققانی مثل ارنست رنان ارجاع داده است. او شواهدی می آورد که وقتی آنها شرق را روایت می کنند، از طریق آن روایت ها و طرحی از شرق ساخته می شود که مطابق آن شرقی جماعت چنین است و چنان و غربی ها بر اساس همان دیدگاه های هلنی و یونانی بربری تحلیل می کنند. تحلیل گفتمان شرخ شناسی در همان بخش اسناد بیرونی قابل بندی است. یعنی تصویری را پذیرفته ایم که بر اساس آن خود را مسئولیت ناپذیر، خشن، احساساتی و غیره می و بر اساس آن نیز رفتار می کنیم و مفعول شناسایی قربی ها قرار گرفته ایم و طرح شرقی ساخته شده از سوی قربی ها را به مصابح چارچوبی برای توصیف خود پذیرفته ایم و به اقتضای آن عمل می کنیم به این ترتیب، نظریه نقد شرقشناسی رفتارها و خلق و خوی ما را به امر بیرونی نسبت می دهد. نمونه دیگر از این قبیل، حسین العطاس است که در همین راستا کتاب مشهور اسطوره بومی تمبل را نوشته. العطاس به آسیای شرقی و جنوب شرقی بیشتر تعلق داشت. او در کتاب خود مفهوم بومی تمبل را توضیح می دهد. بومی تمبل برساخته شرخشناسانه است، و تصویری از ابژه شرقی برای او میدهد و او خود را چنان تصور میکند با این حساب اینکه میگوییم ایرانیها کار نمیکنند کم کارند یا در کار جمعی مشکل دارند و یا در کار خلاق و مولد مشکل دارند و انواع و اقسام گزاره های مشابه که در کوچه و بازار و حتی کتابهای ما مطرح میشود از سنخ همین مفهوم برساخته و سازه مفهومی بومی تنبل است تیاس توضیح می دهد که از قرن شانزدهم تا بیستم از طریق گفتمان شخص شناسی مفهومی از مردمان بومی در آسیا مانند فیلیپین، اندونزی و مالزی برساخته شده است. در متون دوره استعمار که غربیها به این کشورها آمدند روحیات بومیان، درج، تصویر و روایت شد و نویسندگان غربی به, به منزله فاعلان شناسایی آنها را تنبل سست و عقب مانده روایت کردند. و چنین برساختند او توضیح میدهد که این سازه های مفهومی از قرن شانزدهم تا بیستم برساخته شده است و چون میخواهیم در مورد روحیات مردم اندونزی فکر کنیم در چارچوب این شالوده های مفهومی فکر میکنیم شالوده دلالت دارد که بومیان در مقایسه با شهروندان جوامع توسعه یافته سست، کند و عقب مانده هستند نظریه اتاس به ویژه با توجه به تحولات اخیر برخی جوامع آسیایی مانند مالزی در مباحث علمی و از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفت. باستاب نقد شرخشناسی از نوع آنچه در سعید و العتاص دیدیم در میان برخی نویسندگان ما نیز قابل ردگیری است. آل احمد مثالی بارز است و عوامل پس افتادگی مردم ایران را در قرب زدگی جستجو کرده. در دوره کونونی هم این نوع نگاه وجود دارد برای مثال آزاد ارمکی در کتابی با عنوان چرا سخن از عقب ماندگی میگوییم تکید دارد که ما عقب مانده نیستیم آنها ما را عقب مانده تصویر می‌کنند به نظر ایشان و بر اساس تحلیل گفتمان شخص واقعیتی وجود ندارد که دلالت کند ما عقب مانده هستیم به عقیده ایشان عقب ماندگی در تاریخ ایرانی و زندگی مردم ایران وجود ندارد. مدعیان عقب ماندگی اگر شواهدی در اثبات مدعای عقب ماندگی مادر اختیار دارند برایمان بازگو کنند. در تمام کتابها و آثار کهن ما سخن از فرهنگ و ادب ایرانیان و برتری آنها از منظر فرهنگی است. ایشان در این زمینه به سعدی حافظ، مولوی و فردوسی ارجاع دهد و نتیجه میگیرد مدعیان وارونه بودن زندگی و انسان ایرانی و ماندگی ما از میانه راه آمده‌اند و همه تاریخ را بررسی نکردند همه واقعیت‌ها را ندیده اند و کمتر از آغاز تاریخ ایران خوانده‌اند. ایشان معتقد است کسانی که چنین مدعیاتی را مطرح می‌کنند ریشه همه این عقب ماندگی ها را در برخی ساختارهای ایرانی می دانند و بعد نتیجه می گیرند که باید این ساختارها از بین برود و تخریب این ساختارهای سنتی و جایگزین کردن ساختارهای جدید در دستور کار قرار می گیرد. یک الگوی متمایز دیگر اسناد درونی است. وقتی این سرمشق رفتارهای اجتماعی ما را توضیح می دهد، اسناد درونی می کند. اینجا بیشتر به درون توجه می شود. الگوی تحلیلی تحلیلی درونی خلقیات ایرانی را با نظر به ساختار ایلاتی تحلیل می کند. به شیوه تولید آسیایی نسبت می دهد و با نظام آبیاری توضیح می دهد. کسانی مثل اشرف و کاتوزیان از جمله صاحب نظرانی هستند که از این زاویه فرهنگ ایرانی را بررسی کردند. کسانی در همین ساختارها ریشه نخب و عقب ما را پیجویی کردهاند. در آثار دیگر از برخی ویژگی ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران که مانع اقلانیت است بحث شده. دوستدار ساختار فرهنگی اجتماعی ایران را در چرخش میان ماندن و یا مخرب شدن توصیف می کند. سریع قلم از چیزی با عنوان فوق ساختارها بحث می کند که به رفتار جمعی مردم سمت و سو می دهد. برای مثال، فوق ساختارهای مبتنی بر زندگی داد و ستدی آزاد در اروپا و آمریکا پرورش دهنده خلقیات مسئولیت فردی و تفاوت پذیری است. ولی مطابق یافته های سریع القلم ما فاقد چنین فوق ساختارهایی بوده ایم و در نتیجه در فرهنگ سیاسی ما روح مسئولیت پذیری فردی ضعیف بوده است. به تازگی اصناد درونی در تحلیل خلقیات ایرانی با استقبال معناداری از سوی جوانترها مواجه شده است، برای مثال، احمدی علی آبادی بسیاری از رفتارها و روحیات شایع را نشعت گرفته از روان جمعی ایرانی می داند و به الگوهای خاموش و پنهانی ارجام می دهد که در عمق شخصیت ایرانی لانه دارند و منشأ انواع خلقیات هستند و کمتر به زبان تسریح می شوند ولی به طرز مرموزی در قالب باورها، هنجارها، ارزشها، عادتها، کنش ها و قضاوت ها بروز می کنند و جهت می دهند و در بسیاری از موارد افراد جامعه حتی از وجودشان نیز آگاهی ندارند. به نظر ایشان نمونه ای از این الگوهای خاموش است که از تراحیهای سنتی ما مثل قالیها و مانند آن سربر میآورد. آورد برخلاف نمونه های غربی که بیشتر موزاییکی و شبکهی هستند. در مهمانی‌های ما اشخاصی در صدر و دیگران در زل می‌نشینند و همه حاضران مستمع یک سخنران می‌شوند اما در پارتی‌های غربی معمولاً کانونهایی چند نفره شکل می‌گیرد که کاملا متغیر و شناور است همچنین به نظر احمدی علی‌آبادی روان جمعی ایرانی استبداد استبدادپرور است چون الگوهای خاموش خودمداری درون اون تک تک افراد نهفته است و سرشت و خصلتی جمعی پیدا کرده. هنگامی که از نهاد خانواده و مدرسه بیرون می آیند و وارد نهادهای مختلف اجتماعی می شوند، همباره خود را در نظر می گیرند و دیگری را حاشا می کنند. خود را از مسئولیت بری می دانند و مدام به دنبال لولوی بیرونی می گردند که تمام مشکلات و کاستی ها را به آن نسبت دهند. روح اقتدار طلب معمولا در روان جمعی یک جامعه ریشه دارد که تنها در صورت نهاییش در نهادهای سیاسی و حکومتی بروز میابد. شرقشناسان هم اغلب از منظر اسناد درونی نگاه کردند. نمونهش برنارد لویس است وی در دهه هشتاد میلادی گفتگویی بسیار جدی با سعید داشت. لوئیس برای مثال به ساختار فکر دینی ارجاع می‌دهد و می‌گوید ساختار اسلام تاریخی با ساختار مسیحیت تاریخی متفاوت است. در اسلام تاریخی رابطه دین و دنیا و دین و دولت به گونه‌ای است که به نظر وی منشأ نوعی خشونت و استبدادگرایی می‌شود. لوئیس سعی می‌کند با ارجاب درون و با نگاه به ساختارهای فرهنگی تاریخی، استورعی، متنی، یزدانشناختی، الهیاتی و دین ایرانی رفتار و روحیات در این سرزمین را توضیح دهد. الگوی تحلیل نهادی و تلاش برای الگوی سیستمی کلنگر در مقایسه با دو طرف طیف الگوهای تحلیلی که پیشتر از آن با عنوان اسناد درونی و بیرونی یاد شد، به رهیافتی نسبتاً نیاز نیازمندیم تا موضوع را کلنگرانه‌تر بررسی کنیم. الگوی تحلیل نهادی تا حدی به چنین رهیافت تلفیقی نزدیک است و نهادها را به شکل تاریخی تحلیل می‌کند. چارلز تیلی توضیح می‌دهد که از طریق سیر تکوین تاریخی نهادها می شود فرهنگ و رفتار مردم را توضیح داد. فهم اینکه چگونه نهادهای ایرانیان به شکل تاریخی تکوین پیدا کردند و چه وضعیتی داشتند به ما در تحلیل خلقیات آنها کمک می‌کند. علمداری این رهیافت را انتخاب کرده و تحلیل تاریخی نهادهای اقتصادی و اجتماعی و شیوه معیشتی را مبنای تحلیل فرهنگ و الگوهای رفتار جمعی و بررسی علل عقب ماندگی در این سرزمین قرار داده است اما به نظر میرسد همچنان با مدل تحلیل جامع فاصله داریم مدلی که موضوع را با یک رویکرد تلفیقی و با کلنگری به درون و بیرون با دید سیستمی توضیح دهد فراستخواه با مبنا قرار دادن تفکر کلنگر سیستمی الگوی چهار سطحی پیشنهاد کرده است که سطوح زیر را در بر اول نهادها و ساختارها دوم عملیت انسانی سوم محیط منطقی و جهانی و چهارم وقایع و رویدادها یک سطح از عوامل مؤثر بر روحیات و خلق و خوی ما نهادهای درونی جامعه است. مانند نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. مثلا مالکیت و ساختار قدرت. سطح دوم عاملان انسانی و نقش و کنش آنهاست. به طوری که بر حسب نحوه عمل آنها با سیر تکوینی دیگری از نهادها و ساختارها روبرو میشویم. سطح سوم محیط منطقه و جهان است که در دوره‌های تاریخی مختلف بر رفتار ایرانیان اثر گذاشته اگر ما در یک محیط دیگر قرار داشتیم نهادهایمان به صورت دیگری شکل می‌گرفت چنان که تحولات امروزی محیط جهانی یا منطقه‌ای نیز هم در کارکرد نهادها و هم در کنشگری عاملان انسانی این سرزمین تأثیر می‌نهاشد سرانجام سطح چهارم از تحلیل ناظر بر وقایع و رویدادهای خاصی است که در رابطه ما و محیط اتفاق افتاده است زیرا امکان دارد در جامعه ما با همین نهادها و عاملان و در همین محیط وقایع متفاوتی روی دهد که طبعا نتایج در حوزه خلقیات متفاوت خواهد بود